اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و به نام خداوند بخشنده بخشایشگر به خرشید و گسترش نور آن سوگند و اذا و به ماه هنگامی که بعد از آن درآید آید و به روز هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده والارض وما طحاها بقال زمین و كسي كه آن را گسترانيده ونفس وما سواها و قسم به جان آدمی و آن كس كه آن را منظم ساخته فالهما فجورها وتقواها سپس فجور و تقوا را به او الهام كرد است قد افلح من زكاها که هر کس نفس خود را پاک و تذکیه کرده رستگار شده و قد خواب و آن کس که نفس خیش را با معصیت و گناه آلود ساخته نومید و محروم گشته است ثمود قوم سمود بر اثر تقیان پیام برشان را تکذیب کردند اذین بعث آنگاه که شقی ترین آنها خواست. فقال لهم رسول الله ناقت الله وسقیاها و فرستاده الهی صالح به آنان گفت ناغه خدا را با آبش خورش واگذارید فدمدم ربهم بذنبهم فسواها ولی آنها او را تکذیب و را پی کردند از این رو پروردگارشان آنها را به گناهشان در هم کوبید و با خاک یکسان و صاف کرد ولا یخاف عقباها فا او هرگز از فرجام این کار بین ندارد.